یکی از اموری که نمیذاره ما دلبستگی به خدا پیدا کنیم دلبستگی به تعلقات دنیویه این دلبستگی به تعلقات دنیوی ممکنه ما رو به ای مشغول کنه اصلا خودمون رو نبینیم چون خودمون رو نمیبینیم مشغول دیگرانیم لذا عواملی که باید ما رو به خدا محب کنه در خودمون ایجاد نمیکنیم. خطبه 176 نهجل البلاغه. با این شماره گذاری صبحی ساله آخر خطبه خیلی درسه در این رابطه خیلی درسه دقت کنید یا ایوهن ناس تو بال من دقت کنید کسی که امیر خوشا بگه خوشابهالش یعنی چی؟ تو بال من حاله کسی که خب خوشابهاله کسی که مثلا یه آدمی که غرق پوله میگن فلانی یه معامله کرد چه سودی برد؟ این چون قرق پوله میگه خوش حالش چون از دید پول دوستی خودش میگه یه کسی آشق مقامه میگن فلانی این پست رو پیدا کرد میگه خوشا آبا حالش چیه؟ و علی بگه خوشا یعنی کسی که راه علوی رو میخواد راه علوی چه راهیه؟ خدایی شدن به قرب حق رسیدن فنائف الله پیدا کرد و همه اون ارزش همه اون ارزش ها یا ایوهن ناس تو بال من حال اون کسی که چه کسی که خیلی آلمه خیلی پول داره خیلی مقام داره ورزشکاری است که ماهی چایه. اینجاش خیلی اومده بالا کاراته بلده یه مشت میزنه چهار نفر رو پرتاب میکنه چی؟ تو بال من شغلهو ای بهو ان ایوب ناس خوب دقت کنید کلمه شغلهو او را مشغول کرده مشغلش مثلا یکی میگه مثلا به یه نفر میگید فلانی شما رو این روزا نمیبینیم میگه مشغلم خیلی زیاده یعنی خیلی وقتم رو پر کرده دیگه جای خالی برام نمونده تو بال من حال اون کسی که شغلهو عیبوهو ان عیوب ناس، اون شنان مشغول عیب خودشه که دیگه فرصتی برای عیب جوی دیگران نداره. او داره خودشو میبینه، مشغول خودشه. توبا لمن شغله او ان ایوب ناس و توبا لمن لزم بیتهو و اکل قوتهو و اشتغلب تاعت ربه. کالاین یه مقداری باید توضیح ارز کنم مجمل ممکنه کسی فکر کنه پس از فردا دیگه حجره نمیرم دیگه دانشگاه نمیرم دیگه درس خونم دیگه تو مزرعه کار نمی کنم دیگه تو نه نه نه این نیست این بال من لزم بیتهو و اکل قوتهو و اشتغلب تاعت ربه اجازه بدید راجب ازلت من یه توضیح بدم برگردیم به اینجا ببینید ما یکی از ار اخلاقی در اسلام ازلت ازلت سمت و جو و سحر و و ذکری به دوام ناتمامان جهان را کند این پنج تمام اگه کسی توانست این تا رو در خودش ایجاد کنه خوشابالش ازلت معمولا در عرف عامه چی معنی میکنن؟ گوشهگیری و انزواب و از جامعه بریدن و کار و کوشش نداشتن و خلوتی نه این نیست عضلت چیه شما در هر جمع و محفلی هستید در اون جمع و محفل سبغه الهی رو بگیرید رنگ پذیری غیر سبغه الهی نداشته بود. چقدر قشنگه خوب دقت کنید سبغه الهی چیه مثلا عنوان مثال آقا اسلام به ما گفته شما باید فرض بفرمایید پوششتون اینجوری باشه. آقایون این خانومایی، خب حالا عضلت چیه؟ شما میرید توی کشوری توی شهری توی دانشگاهی، توی محیط کاری همه این ش... پوشش رو مسخره میکنن. سبقه اینه که پوششتون این باشه. حالا چون همه مسخره میکنن شما به رنگ مردم در یا همونی که خدا میخواد میپید. شما پس این عضلت هرگه صحبت حاضر قائب شنیده ای من در میان جمع و دلم جای دیگر است. این میشه ازلت. این با, با همون معنی لمن لزم بیتهو کسی که تو خونه خودش میشینه ملازم خونه خودشه خب انسان تو خونه خودش کاری نداره که مردم چجوری میخوان همونطوری که خوب دقت کنید ذا زا، الهی اقیم سلات لذکری خوش خوشا آنان که الله یارشون بی همیشه قلبه الله کارشون بی خوشا آنان که دائم در نمازن بهشت هشته جابدانی جایشون بی دائم در نماز مگه میشه خب من تو مغازه که خریده پروش میکنم اگه اون برای خدا باشه مثل ذکره اینجام من تو خونه باشم تو خونه مثلا برای خودم یه روالی دارم کسی نگاه نمیکنه میگه همه جا رو مثل خونه خودت ببین یعنی انگار تو خونه خودت نشستی تو ببین تو خونه اگر عبداللهی بین خود و خدا چجوری زندگی میکنی؟ حالا تو جامعه اومدی تغییر میدی مثلا اگه من تو خونه نمازم یه جور میکنم تو حسینیه حاجیان یه جور دیگه میکنم پس من منافقم تو نمازخونه دانشگاه یه جور دیگه میکنم من منافقم تو خونه خودم تنهام سر سفره میشینم یه جور قضا میکنم تو حسینیه سر سفره نشستم حالا هی دارم رعایت میکنم بقیه دارن منو نگاه میکنم. پس من منافقم من ریاکارم همه جا را مثل تو خونه خودم ببینم تو خونه خودم خدایی دارم عمل میکنم و اکل قوتهو آقا مال خودشو رو بخوره در صدد روزی حلال باشه به طاعت ربه خوشا آبا حال اون کسی که به قوت خودش قانه و بکا علا خطیعتهی به خاطر خطای خودش داره گریه میکنه ممکنه بنده خدا یه وقت رسیده به شما آقا ناراحتم به خدا گریم گرفته فلانی اینجوره گرفتاریان خودت چیه؟ آقا جوونه 17, 18, 19, 20, پنج ساله از را میرسه فراوان بنده مبتلایم فراوان مبتلایم از را میرسه به این فش میده به اون فش میده به اون فش میده این بده و... یه مجزی من. تو خیلی حالا باید خودتو بسازی تو چیکار داری؟ برو خودتو درست کن اینم شیطان عزیز جوانای مذهبی رو میگم ما یعنی آدم وقتی گوش میکنه میبینه یه بزرگی به من گفت خیلی مرد بزرگی بود گفت شیطان این تیپا رو اونچنان دوچار این مشغله کرده که از تعالی بازشون بداره تو الان در این سن انقدر فرصت داری به دیگری به تعبیر عوامانه بند کنی خب فکر خودت باش ببین خودت چی هستی حالا این چه روحیه‌ای است که در ما مذهبی‌ها ایجاد کردن از ابتدا شروع کنیم به این و اون هی hey, انتقاد کردند hey, اصلا مبنای ما قول آقا گفت من این رشته رو انتخاب کردم از ابتدا برای اینکه این ادده رو بکوبم اصلا این رشته رو انتخاب کردم و این کلاس رو رفتم تا بتونم این ادره رو بکوبم پس تو از اول به قصد این که با دیگران در بیافتی پس به خودت کی میرسی شیطان هم یه جوری جوری ما رو مشغول کرده و بکا علی خطیئته فکان من نفسه فی شغل و الناس منه فی راحه این جوریه که برای نفس خودش انقدر به خودش مشغله میده مردم از اون راحتن مردم اون فعلا با خودش مشغوله